عوض بالله من الشیطان الرجیم. توضیحاتم واقعا بسم الله الرحمن الرحیم و به هی نستعین. با ذکر یک صلوات و تقدیم اون بر محمد و آل محمد شروع کنیم. اللهم صل علی محمد, آل محمد و آل محمد. ان با یه انرژی عالی انرژی بیشتر از ترمه قبل انگیزه بیشتر انشاءالله بهتر از قبل بخونی من خودم که یه مدار اینجوری هم سعی میکنم انشاءالله ترم دو رو به عدلله هم مراجعه کنم خودم شما هم همینطور انرژی بیشتر مباسه بهتر بزرگ بهتر سر کلاس بهتر انشاءالله در کلاس مشارکت داشته باشید این ترم دو رو یه جوری کار کنیم که امام صادق علیه السلام بفرمد که این شاگرده ایمان چقدر خوب هست امام زمان علیه السلام بگه اینا چقدر خوب بسیار خوب صفحه دویست و بیست من از دوستان که نبودن اوز میخوام دیدوز دو صفحه خوندیم میگه ببخشید و یه توجه و او به دعا توجه ا و, و جهت وجهیلظی فطر سواه وال ارض. از دوستان که گوشه مرراتون هست ای ها رو بازکن گروه خودمون رو باز کنید من دعا که دیروز آرس میدادیم دادیم روایت شو اونجا وارد کردم. <تصفيق> آره یکی دو تا اکس هم لازم داریم اولار رو اونجا وارد کردم حالا الان نگاه میکنیم من از شما میخوام که اونا رو به بدید بخورم براتون خب. بحث ما در مستحبات نماز فصل چهارم، فی باقی مستحبات ها. نماز یه سری مستحباتی داره چه قبلا گفته شد. اون عبارت اولشو ببینید. من یه تذکر دیگه بدم اونجا دوستانم تازه اومدن بعضیاشون. قبل ذکر فی تزائیف ها و قبل لها یا قبل لها خوندم دیروز. من ها منها. جملتانم بگید اون ذکر بعد بخونید. تضایف ها این هاش رو چند جور دیدم زدن ما دیروز گفتیم تضایف سلاست سلات گفتیم این تو برس و سلات دیگه لابلای سلات قبلا گفته شد و قبل از آدم قبل ها اومد یه شاید مشکل پیش بیاد که قبل از سلات باید بزنیم به بس تهارت. تهارت هم یه سری مستباتی گفته شده حالا نمیدونم نگشتم ببینم اونجا مستباتی برای نماز گفته شده یا نه سباکو. آره باید اینجوری دولست کنیم یعنی تو لابلای بحث سلات مصطباتی گفته شده قبل از بحث سلات هم مصطباتی گفته شده دیدم امروز به نظر آقا جمال رو دیدم گفته بود که تضایف چیفیت سلات یعنی فصل ثوم چیفیت سلات زده بود قبل از چیفیت سلات هم یه سری مستعبات گفته شده چون وقت میشه تو مقدمات دیگه مثل مکان و شروط صلات و اینها میشه. اینا هم میشه زد تقریبا آره. آره. این ولی یه احتمال دیگه هم اینه چه تزاعیفه ها رو ببینم چی بودن. چیز بودن؟ تزاعیفه ها. یادم نمیه حالا یادم رفت نمیدونم چی بود. حداقل این دوتا اعتمال هست تضیف ها به سلات بزنید که من زدم به سلات یا ها رو به چیفیت سلات بزنید یا حالا یادم نیستسی که اون رو ببینید هوش رو ببینید. قبله ها و قبل ها هم توضیح دادم دیگه طبق هر زمینی که تضایف ها رو زدید قبلش رو طبقه اون میتونید توضیح بدید مشکلی هم نداره اما خیلی مع حالا نیست عبارتید اما مستحب شماره چهاش. مستحب مستحبوار یک بار, بار بشنوین دوستان که نبودن اینا رو, رو زیننشون باشه ترتیب و تکبیر اولیش رفع الیذین بله توجه با 6 تا تکبیر و چهارمیش امروز و یتوجا بعد از تحریمه حتما عبارت شهید اول رو اول ببینید تا اون توزیات شهید ثانی اون لابلای مزاحم اون اصل مطلب نشه بعد توضیحات شاید سانی رو ببینید یتوجه ها بعد از تحریمه حالا این چیه یتوجه ها یعنی چی؟ شاید سانی توضیح میده میگه یتوجه ها اید او به دعای توجه دعای توجه رو بخون دعای توجه دیگه چیه؟ همون وجه دو وجه یلیل لزی فتر و علا ارز آیه رحیمی اوبردی اونجا رو اونو بده من برای همه رفق دست شما بباشد نکنه. کافی آدرس بنویسید کافی جلد 3 صفحه 310 کافی جلد صفحه 310 یه حدیثی هست از حلبی حدیثی است از حلبی از امام صادق علیه السلام حلبی یه کتاب سلات داره و جز همون اصوله مطالعه اصول یعنی چی منظور چی آره اصول هر برنامه میگن یا هر چی میگن جزء هموناست چرا چون مستریم من از امام گرفته و این جزء اون کتاب صلاتای هست کتاب های اصولی هستش که به دست کلینی اینا رسیده و کلینی مستریم از اون داره نقل میکنه حالا اصلاً شو خود الان من خودم یادم نیست که به ما رسیده یا نه به نظر نرسیده الان ما دستمون نداریم هر چن میشه بازسازی کرد میشه چطابه سلات حلبی رو به وجود رو دوباره میتونید بگید چطوری؟ خود رو باید کلینی تو چی رو باید کلینی ببینید تحذیب استفسار ملای احزور فیخور رزا فیخور رزا اگه کرده باشه با تو اسم رو بیش تو هفت دائب موارد دیگه اونهایی که ممکنه این روایت رو داشته باشن نگاه کن هر جا نوشته بود که حلبی یه حدیثی از سلات خود به احتمال زیاد از همون کتاب الصلاة شه اینا رو جمع میکنن چه کتاب و سلات. ترتیب هم بهش میدن مثلا اولش از مقدمات شروع می‌کنن چی چیزی میشه ساخت سازی کتابی که به ما نرسیده این روش رو یاد بگیرید بعضیا علاقه دارن این کار را انجام میدن متوفید شدید کتابی که به ما نرسیده ولی در سایر کتاب ها انعکاس پیدا کرده اون انعکاس ها رو جمع میکنن ترتیب میدن بهش و احتمالی البته احتمال هفتادشتاد درست هم درست نمیاد خوبه خوش کل نداره میشه کتاب و حلبی یه کار خیلی راحت و جذابی هم هست و البته به دردم میخوره یعنی کار آبکی و به درد نخور نیست نه خوبه به درد میخوره. شما یه کتابی میسازی اسمش کتاب و سات حوی با احتمال خطای 20 درصد و یه محقق خوشش میاد این برمی ازش استفاده میکنه بعضا میبینید که منابع اون اینها رو هم همش رو توش دادید خیلی از ذیت تحقیقی به درد میخوره. چتاب و سلات ابن ابنبیمه رو درست کن کتاب من این دو ذهنم بود یه زمانی منابع کافی رو استخراج کنم و اینها رو همش رو در یعنی کلینی وقتی کافی رو می تو کتاب خوست چندتا کتاب بود؟ همه شما میتونیم استخراج کنیم و بسازیم این چت‌ها احیا کنیم، بازسازی کنیم. یه چیز عظیمی میشه، جالب میشه، خیلی هم مفید میشه. اگر علاقه من بودید بعدها این رو انجام بدید. خب من این حدیث رو از حلبی تو گروه گذاشتم. اگه میخواید میتونید ببینید. الان حدیث علی بن ابراهیم، همون علی بن ابراهیم خودمون که تفسیر قومی رو داره. از معمولاً علی ابن ابراهیم معمولاً از پدرش نهات کرده تو کافی چند هزار تا صحبت چند هزار روایت از ابن عبی عمر خدای ابن عبی رو رحمت کنه چندین هزار روایت ایشون در کافی هست یعنی منی این حرف میگونین چی؟ یعنی بخش عمده ای از معارف شیعه زحمت این بنده خدا هست ابن ابن ابي عمرم كتاب الصلاه داره حالاين حديث از ابن ابي عمر یا كتاب حلبيه ابن ابي عمر هر جفتش احتمالش هست احتمال كتاب الصلاه ابن ابي هست كتاب الصلاه حلبي هم هست چون هر جفتشون هستن دیگه اینا ببین از حماده ابن عثمان از حلبي سندشون خیلی سند خوبیه همهشون آدمای بزرگن هم. علی ابن ابراهیم پدرش ابن عبی هم حماد ابن عثمان حلاوی همهشون آدمی بزرگی سند خیلی سند پر ارزشیه خب از امام صادق علیه السلام تا اسم امام صادق اومد دیگه همه چی میده کنار دیگه وقتی خورشید اومد ها دیگه اصلا نباید دیده بشن دیگه حلاوی و ابن عبی آمیر جلوه امام صادق اصلا هیچی از افتا تحت سلاته فرفه بالا، کرد обсد همه بستن دستتو باز کن قشنگ سم چبر سلاس تکبیرات این چیه سه تا تکبیر چیه این همون مستحب دیگه که شاید دیده باشید بعضیا هفت بار تکبیر میگن نمازشون شروع میکنن این هم سه تاشو بگو سم قل اللهم انت الملك الحق که دیروز اینو آدرس دادم بهتون اللهم انت الملك الحق حالا کاملشو میخونم اللهم انت حق الحق لا اله الا انت. سبحانکه انی ظلمت تا نفسی فخفر لی زنبی انهو لا یخفر الزنوبه الا انت پس سه تا تکبیر میگه بعد این دعا رو میخونه سمتکبر تکبیره تایید دو تکبیر دیگه بگو میشه چند تا؟ پنج تا تکبیر دیگه سمتکل دعاشتی بود لبیکه و سعدیکه و الخیرو فی یدیکه و شر ليس لیس ایلیکه و المحتی و من هدایتا لا ملجمع چه الله ال چ صبحانه نشه و هننا از از و بلاقغ هم نشون بده صبحانه نشه و هنانکشه تبارته و تعالیت صبحانه رب بلبعیت صبح و تشببر بعدش دوتا چند تا تکبیر میشه چندتا هفتا دیگه شش تاش مصبه یکشان تش، صبح تقول و این وجهتو یعنی همین دعای توجه. وجه تو وجهیه للذیفتر السماوات والعرز عالم الغیب و الشهاده حنیفن مسلمان و ما انا من المشتکین انسلاتی و نسوچی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بزالک امرت و انا من المسلمین این هم دعای توجه که بحث اینجاست حالا بعدش روایت انتحاش این میگه میگه سمت اووز منش شیطان الرجیم سم مقرع فاتح تل کتا عوض بالله رو بگو و بعدش فاتحه رو شروع کن نمازه پس هفت تکبیر بینشون دعا ها رو هم گفتیم. ها پس این یتوجه ها یعنی دعای توجه همین وجه تا رو بخونید اینو بخونم بعد بفهمد اید او به دعای توجه و ها وجهت و وجهیه للذی فطر از سماوات و الارضه الاخر بعد تحریمه بعد از اون تجبیر اطال احرام تحریمه یعنی همون یه دونه تجبیر چه احرام که میگید هی سما فعلها در هر جایی که تحریمه رو انجام دادید یعنی شما ممکنه قبل از اون تا تجبیر مستحب تجبیر رو بگید بعدش بگید لابلاش بگید برا نمیکنه هرم باقی اون تکبیلتال احرام رو گفتید بعدش دعای توجه را می قبلش هم می رو میخوانید میشه. چرا؟ دعای توجه رو توی روایت گفت بعدش بخون دیگه. رو قبلش بخون دیگه آره این شاید توی یه روایت دیگه باشه ولی فعلا این روایت که ما خوندیم میگه بعدش بعد از اون حالا شهید ثانی هم میگه بعد ات... شهید اول میگه بعد از تکبیلتال احرام بدو دیگه شاید اون،, اون که میگن دیگه از باب عمل به این مستحب نمیشه دیگه. اگر نداشته باشیم روایت که دعای توجه قبل از تکبیر میشه ما گفتنش ذکر میشه دیگه. این نمیشه. ذکر میشه. ایلادی نداره؟ قبل از تکبیر؟ نه دیگه دعاست دیگه. دعاشگاه نداره؟ نه دعاست دیگه. ذکره دعاست, دعاست. مشکل نداره؟ حاطور دیروز گفتیم مگه یادت نیست گفتیم اون 6 تا تکبیر رو میتونه بعد از تکبیرات احرام بگه یعنی تکبیر میگه نماز شروع میشه 6 تا تکبیر مستحب رو میگه دعاهاش هم ممکنه بگه مشکل نداره خب مستحب بعدی در مورد نشست نماز خواندنه بعدیش هم همینطور بعدیش هم همینطور حالا نه اینکه همش فقط در مورد نشسته خواندن باشه ها ولی مستحب در هنگام نشستنه حالا یا نمازش کلن نشسته اصلا؟ یا نه نشسته داده تشهد میگه مثلا. اولیش که در مورد نماز نشسته است. حالا فعلا و تربع المسلی. مستحب پنجام. مسلی تربع کند. تربع روش بینیسید چارزانو نشستن. بعد آدرس بدید اکس المنجد. البته خب یه ذره دقت میخواد دیگه حالا المانگیدم ببینید برای نزدیکتر شدن به مطلبه بلا این توضیحات که میدیم ببینید باش منطبخ هست یا نه طرف بول مسلی چارزان و نشستن مسلی قاعدن ل اجزن او لکونه ها نافلتن نماز نشسته ای که نمیتونی ایستاده بخونی نشسته می‌خونی یا اینکه اصلا نه نماز است من میخواهم نشسته بخونم عجزی هم در کار نیست حالا که نشسته میخونی در هنگام قراعت حالا قراعتی ببینید شهید اول رو ببینید چند کلمه خط... چند چند بعدش در هنگام قراعت شما که نشسته داری میخونی مستحب بس تربع کنید تربع یعنی چهار زانو نشستن عکسش هم من تو المانجد گفتم تو همین گروه هم الان یه عکس کوچولو هست نشست اونجا برای وردن نشسته به صورت تربا فقط یه توضیح اضافی داره ل... بل به ان یجلس علیه و روی دوران یا دو باسن خودش می نشیند و ینس بس ها قیه و رکبتای ساق و زانوهای خودش رو میاره بالا <تصفح> پس چهار رو تصور کنید که زانوها رو میاره بالا ما چه چهار زانو میشنیم زانوام هم پایینه ولی یه مقدار میاره بالا رزا اون عکسی که براتون گذاشتم شاید از این جهت گویا نباشه چما تجلسل مرعه تو همونطور که زن در هنگام تشهد اینجوری می نشیند. خب این تجلسل مرعه متشهدتن رو یه آدرس بدید کجا آدرس بدیم به کجا ارجا کن سلو. آه تو چیفیت سلو. سلو. تو بس تشهد گفته که زن در حال تشهد این شکلی بشینه تربع کنه چهار زانویی که زانوها رو میاره بالا حالا یه نکته اینجا هست علی محمد بیا اینجا ببستی یه لحظه بیا عوض بکنم ببستی چون تو عوانه نداشتی دیگه بشین، چارزانو بشین رو رفقا. این دو زانوئه. این دو زانوئه. حالا چارزانو بشین. دستم رو زانوها. رو زانوها. زانو بشین. آها. دستام روزانوها روزانوها سانت آره. این حالت تربعه. ولی چون گفته زانوها رو بیاره بالا، زانوها رو یه ذره بیاری بالا. آه. حالا بیشتر دیگه. پیرمرده دیگه نمیتونه به نظر میرسه اینه اون چیزی که شاید سانی توضیح داد این شکلیه که چهار زانو نشسته دستار و زانو رو میاره بالا ولی این سخته حالا نمیتونم میشه یا نه ممنون آقای احمامد این هم از همکار فنی ما به این شکل برده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زانوی خود بالا حالا نمیدونم منظور شهیده همون یه که در حالت طبیعی بالاست اما اگه بخوایم بیشتر بیاریم بالا اون سخت میشه. یعنی یه دو تا تکیگاه زیرش باید بالش ایسی بزنیم بیاد بالا. ولا خودش. شاید هم به قول شما همون که خودش یه مقدار بالا هست همونو داره میگه. ینسه و ساقیه و رکبته هیه. حالا نمیدونم. حال این برای من اصلا اول یه سؤال بود. خب به صورت زربدری هم از تا پاش. دیدی دیگه. پاش زربداری زانو ه در حال قرائت، در حال قرائت، در حال رکوع چی؟ در حال تشهد چی؟ اینا نمالن میگیم. و سن یور حال رکوع وقتی همین نشسته داره میخونه، میخواد بره رکو سن لاین داشته باشه. یعنی چی؟ سن یور اجلایه سن یعنی جفت کردن دو پا. دو پا رو جفت کنید. چهار زانو میشه یا دو زانو؟ دو زانو میشه دیگه. سن یا رجلین در حال رکو جالسن البته دیگه اگه سر پا داری رکو انجام میدی که اون جدا اون یه چیز دیگه هست حالا توضیحش چیه؟ تصویر این چیه؟ بله؟ چی رو؟ سن یعنی جوه کردن دوزان رو نشستن میشه دیگه به ان حالا خودش توضیح میده به ان یماده همه به ان بار باید تصویر میگن یعنی صورت این مطلب رو براتون داره نشون میده. به ان یمده ما دو تا پا رو بچشه. جمع نکنه، میچشه دو پا رو. میچشه یعنی از پشتش این بیرون میادا در حال رکوع. عکسو گذاشتم. گذاشتم تو گروه ها. عکسشو گذاشتم اونو ببینید. دو پا از پشتش اینجوری چشیده. میاد بیرون یمده ها ما دوتا پا رو و یخرجه ما من منوراهی از پشتش این دو پا در میاد منظور اینه جمع نمیکنه جلو خودش اینجوری بعد این توضیح سنیور رجلین هست جفت کردن پاها اما مستحب ادامه داره رافعن علیه ان اقبیه اقبیه جلوش بنویسید پاشنه های پا دو تا پاشنه شما چه دو زانو نشستین، این علیتینتون روی پاشنه قرار گرفته دیگه حالا یه ذره بیارید بالا رافن علیایهه عنقبه از این علیتین که چسبیده به پاشنه است اینو یه ذره بیارید بالا بخواید رکوع انجام بدید دیگه پاها هم قشنگ جفته از پشت سر اینجوری چشیده مجافیان فخ ضح ان این رشبتتهه دیگه لغت دیگه لغ رو همطور که میگم بنویسید. مجافیان یعنی جدا کننده باز کننده هست. فخ یعنی رانهاش رو مفعول مجافیانه از چی جدا میکنه رانها رو تهیت بته، رشبت همون دو تا زانو تیه پشت دوزانو پشت دوزانو یعنی اینجوری یه ذره خم میشه به طرف جلو در نتشه رانها از قسمت پشت زانو اینجوری فاصله پیدا می کنیم قافله بیا بیاد جلو یه لحظه شما عبا ندارید دوزانو بشین خب این حالت نشستن که گفتیم این مستحب نیست وقتی قرارت دارید میخونید چهار زانو بشین حالا میخواد روکو انجام بده دو زانو میشینه بعد الان یه مقدار خمشو به طرف جلو سرشو میبینید اونم الان توضیح خواهر داد به حدی میاد پایین که سرش مقابل زانوها قرار بگیره الان قشنگ هم از پاشنه پاش جدا شده خم شده حالا چیزه نری اون چیه حالا به همین شکلی بود که عرض کردم حالا تو اینترنت دیدم عکسش قشنگه یا عکس خوبی هم اونجا گذاشته عکس با شخصیت شما اون رو ببینید عین همین چیزی که الان توضیح نه حالا ماظ از اون یکی عکس بهتر بود اون عکس قبلی خیلی بذلل میچ نچسبید ولی این عکسو ببین عشان نماز دیگه مامن رای غافل بشید هم کار فنی دومم بله خاص اینو نه ولی چی می‌خوری مایی معلوم میشه نافله نخوندی یا همون خند میشه هم حال الکی دیگه داری چیز جدیدی نیست که نه مشکل نداره حالا توزیعاتشو تموم کنم ببینید یعنی در یعنی که جدا کننده است دورانش رو از پشت دوزانوش منحنی هم. این خم میشه. رو دیگه. چقدر قدر ما یوحازی وجهوه ما قدام روچبته هست. این جوم میده برای امتحان. اینو بیاری بگیر اینو تر رو بکنید فقط. البته من اینجور سوال نمیدم. چون این حفظه. خودم حفظ نیستم. این اینو یه ماتی که ازم بپرسی بزرگی یادم جایست. تیه هنچی یادم نمیدم. من هن ينقدر یوحازی يوازي هو، انقدر خم میشه تا اونجایی که یوحازی موازی بشه مقابل بشه صورتش آنچرا که جلوی دو تا شه یعنی صورتش میاد تا جلوی دوزانو این رکوع شخصی است که نشسته خب سرش هم هیچ دیگه هم سرش رو میذاره رو موش دیگه بیشتر از این میشید تصویرش هم عرض کردم تو فضای مجازی تصویرش هست جستجو کنید نمی‌دونم چی جستجو کردم تا داریم حالا به هر این هست 12 نشسته نه برای دیگه تشهاد یه جور دیگه است اون موقع قرائت پس اگه داشته باشید اینو دوباره میگم شخصی که نشسته نماز میخونه موقع قرائت اون ترب با اون توضیح که گفتیم موقع رکو این شکلی؟ آن موقع تشهد چه کنه؟ این بعدیه. و تورک و هو حالا تشهده این. یه بار دیگه یه نفر رو دعوت کنیم بیاد چونه. تورکه در انگام تشهد. تورکه چیه؟ به ان یه اجلسه. با اسمش چیه؟ با تصویر. تصویر. تصویر؟ آره دیگه. اا، تصویر میکنه مطلب رو برات. آره، آره دیدی. بأن يجلس على ورچ هل أيسر ورچ ران. آربم قشنگ اوقات زیاد وضع کرده دیگه برای هر قسمتی از بدن یه اسمی داره. ورچ هل أيسر یعنی ران چپش. خودتون تصویر کنید نمازگذار موقع تشهد روی ران چپش مینشینه بله ولی بله چه چما تقدم تا گفت چما تقدم یعنی تو بسید چفیت و سلات رو داشتیم کنجرهی ها صفحه دویست رو ادرس بدن فا این نهو مشتر کن بین المسلی قائما و جالس این مشترک است بین مسلی قائم و جالس چطور مشترک قائم چجوری قائم و سر آها چون تلاشه هولیدگیه که شهادت که باید پیشینه دیگه سر پا چشهد نمیکنه خیلی خوب این توضیحش اینجا کم بود چون قبلا گذشته بود توضیح کامل نیست پس تروق چیه آقا رو ران چپ چه میشینی و پاهاتو چیکار کنم به راست خارج خاله چیکار بذارید آها اینم روی پای راست قرار می گیره در بطن پای, پای چهر روی پای راست میاد در بطن پای چهر خب یه نفر بیاد این نشون بده که دوستان محمدی میاد بیاد, بیاد. البته یه شخصی بیاد که یک لاغر باشه خوبه محمدی خوبه بیاد آره. ببینم میتونی توانی رو نشون بدی آها آه. ببین این حالت توراش خیلی همونجوری میشینند دیدید دیگه در حالت تشههد مستحبه قشن الان روی ورچه هل ایسر نشسته بعد چف پای چپش قشن روی پای راستش به هم رسیدن این خوبه کاش میشود اکسی هم بگیریم و تو گروه بذاریم این رو روی رون پای مزارتو مشکلی اون بذاشتن دستها ها که به این ربطی نداره اون حتی معمولی هم بشینی باید رو همون رونا میزنی دیگه مطابق استحبابیه دیگه در اون مورد حرف فیلن نمیزن فیلن نحوه نشستن رو گفتی روی پای راست باز دیده پای چپ باشه روی پای راست تو بطن پای چپ قرار میگیره و نظر را قائمان مسجد مسجدهی تموم شد. اون نحوه نشستن تموم شد. حالا کجا رو نگاه کنید استحباب در این مورد در حالات مختلف نگاه به کجا باشد بعضی که موقع نماز همه جا نگاه میکنه مستحب کجا رو نگاه کنیم اونو میخواد بگیم بله غیر نماس هم همونجوری بله ممکنه بله من خودم برم سخته خورده مثلا تورج خیلی نمیزونم بشینم آره عذیت میشنم مگیم که این وضعیه تکیگاه چیزی باشه اونم که سخته خورده آره. و نظرو قائمان الى مسجدی. شاید اول ببینید و راکعاً الا ما بین رجలైه و ساجدن الا طرف انفهی و متشهداً الا هجرهی دیدین صورت مختلف کجا را ببینیم اینا رو قشنگ یاد بگیرید بین حتی بین مردومن می وقت بین دو نماز می‌خواید احکام بگید قشنگ اینا رو راحت میتونید بگید که مستحب اینجوری نگاه کن قائمان به محل سجده خودت نگاه کن یعنی هم مهر رو ببین البته به غیر تحطیقنی از حدقه میاد دیگه. چشمت تو اینجوری تیز, تیز نکنی. به غیر تحطیق. چشمت تو از حدقه در نیاری. مغره میترسه بیچه. به غیر تحطیقن. بل خاشن به. اینجوری به حالت خشو خضوع نماز دیگه. اینجا سلطنت گره میخوای بکنی. <تصفح> گفتم که باشتنی. چشم تو از حدقه در بیاری. تیز نگاه کنی. و راکعاً چه چه کجا رو نگاه کنیم؟ موقعی چه روپو میرین؟ شما تو روو کجا رو میبینین؟ آره ال ما بین جلاحه اون پایین بین دو تا رو نگاه کنید. فرش حال چیست؟ و ساجدن هنگام سجده کجا رو نگاه کنیم؟ الا طرف انفهی نه چه بینی رو نگاه کنه آره. واجب نیست که رو ببندید و متشهدا اله حجر در حالت تشهد هم به دامن خودت نگاه کن آره دامن زنانه نیست که دامن یعنی همین دیش داشم که پوشیدی اون پایینش میشه دامن دیگه آره نری باشنی یه وقت بگی من موقع نماز دامن باید فایده کنه نمیشه نه منظور یعنی اون قسمت پایینه لباسه یاره پس در واقع اون چون قدیما لباس کوتاه نبود که سوقات غرب بود برای ما دیگه این لباس کلام میپوشیم مالا غرب قدیما همون لباس بلند میپوشیدن از قسمت این چمر به پایینش میشه دامن لباس دیگه اون قسمت رو نگاه میکنی موقع تشهد تام شد شهید ثانی میکه الان فن فنیش میکنه میگه کلوزالکه مربیان هی دیگه مالا مستهد هاست دیگه اینو دو. تو مردم دیگه اینا رو نمیگیم ما. البته به نظر من بین مردمم باید روایات رو بگیم. یعنی الان بین دو نماز که اینجا احکام میگن اگه از من میپرسیدن میگفتم شو بگو. روایتشو بگو. خیلی جذابتر می‌شد. الان دیروز کلی روایت خوندن براتون یا نه در مورد همون تکبیرات و دعاول. امروز شو خوندن. دیدی چقدر بهتر بود. امام توضیح میده، آقا مثلا اسم امام رو میشتو آدم دلش باز می‌شد. حالا اینجا همه اینها مرویس یعنی روایت داریم چه موقع کسی ات... که نشسته نماز میخونه به خاطر عرض یا نافله چه جوری بشینه رکوعش چه جوری باشه تشهدش نظر چه جوری باشه البته این بحث نظره havas هم بحث خلاص تو بحث نظره اون قبلی هم چه روایت داشته مشکل نداره اما الان بسش تو نظر کلو زالکه یعنی بس این نظر که داریم کجا رو نگاه کنید مرویم اللل اخیره غیر از این آخریه که در هنگام تشهد به دامن لباست نگاه کن خیلی خب اگره لباست نداره پس چه کنیم چرا فتفا دادید میگید مستحب به هنگام تشهد به دامن نگاه بشه میگه فضل حال اصحاب. اصحاب این ذکر کردن. پس چون فوقه ها ذکر کردن لذا از اونجا ما هم به استحبابش میتونیم قائل بشیم. استحباب دیگه خیلی حساس نیست مطلب. شهید سانی میگه ولم نقف علا مستندهی. ما چه به مستندش واقف نیستیم. با برقیه با برقیه آقای فازل اصفهانی رو ببینید مناهج رو اونجوری من که دارید ببینید قال الفازل اصفهانی تو مناهج بلل اخیرا دو تایه اخیر روایت نداره یعنی هم هنگام تشهد و هم هنگام سجده این دو تا روایت نداره همونطور چه چمافی سایر کتبهی و کتب غیر ای مناعصاب همونطور که شایدسانی تو بقیه چتاباش گفته این دوتاره باید نداره اصحاب هم اونجوری گفتن. حالا اینو داشته باشید یه توضیح از خواهم کرد. کل و زاره که موی آن ال اخیره و حال اسباب نقف ال مسته نعم نه هوم اون. شهیدسانی با این نام میخواد یه دلیل براش درست کنه. البته میگییم های شایدسانی همونجا ذکر حال اسباب کافیه دیگه. وقتی اصحاب گفتن یه چیزی مستحبه در استحباب مخصوصاً بنابر تسامح در ادله سنن راحت میشه با مستحب به دیگه فوقش بگو رجا به انجام بدید ان شاء الله ثواب می‌برید اون دیگه در قلش حالا شهید سانی میخواد بگه نه اصلا من یه دلیل عقلی براش دارم پس ببینید روایت نداریم نیست کلام اصحابو داریم حالا یه دلیل عقلی این از اون مسائلیه چه شاید ثانی اینو آورده من براتون میگم خیلی مسئله خوبیه برای هست که میخواد کار کنه تمنی کنه هم بحث روایت توش هست چون ببایتون میگم نیست عباده. هم بحث علما و هم بحث عقل قشن سه تا دلیل هست عدلل رو ما اینجا روش کار میکنم میگه که بله. دلیل عقلیم اینه نه هم ها مان اون منن نظر الاما یشغلال قلبه ففیه مناسبتون چه غیره میگه ولی این که شما موقع, نم... موقع تشهر به دامن لباس تو نگاه کنید جای دیگر نگاه کنید این مانع از مشغولیت قلب میشه یعنی برای حضور قلب کمچ میکنه و همین خیلی خوبه دیگه درسته؟ پس این مناسبت دارد با بحث حضور قلب مثل بقیهش پس پسش رو شما بگید پس نگاه کردن به دامن چی بشه؟ مستحب, مستحب بشه این از دلیل عقلی شهید سانی البته فوری جواب بزنید تو میاد که آقای شاعر انسانی خدا رحمت کنه حرفتون درسته ولی نه. دلیل بر استحباب نمیشه استهباب یه حکم شهریه با این که نمیشه گفت اینو. شما که اگر اونجوریه خب نگاه به مهر هم همینطور. پس نگاه به مهر مستحب بشه. نگاه به همین نوچه دماغ اینم باعث حضور قلب میشه اگر اگهجوری میگید. با اینکه نمیشه استهبابیتو اثبات کرد. این چه حرفیه؟ اینا رو بگید اخباریا میان دعوا ميكننا. اینا خیلی چیزی نیست. این حرف اول حرف دوم حتما اینو یادداشت کنید من اینو از کسی نشیدم اینو خودم تو بررسی هام دیدم و بارها هم گفتم اینجور فقه قبل از اخباری ها با فقه بعد از اخباری ها خیلی فرق دار چون اخباری ها شغلشون خبر کنید تا اخباری ها نگن روایت نداریم باور نکنید الان شهیدستانی میگه نباید نداریم تو دوتاش در حال چه اخباری ها گفتن. هدایت رو ببینید من بارها هدایت رو توصیه کردم. هدایق آقای بحرانی رو ببینید میگه چرا نداریم؟ خوبش هم داریم. هم اون تو سجدرا را داریم هم تو تشهد رو داریم. جای دوری هم نیست تو فخر رزا. پس معلوم میشه که تطبیق آقایمون خیلی نبوده. بابا شهیدستان یه فخر رزا رو مید اصحاب گفتن رو اصحاب ندیدن فقط شاید ثانی هم نیست که اصحاب باید میدیدن فخر رزا تو دستتون نبوده احتمالا فخر رزا لذا اخباری ها آی هدایق و دیگران گفتن داریم حتما پس آبا این نتیجه رو بگیریم بعد تمام حتما داشته باشید برای این که توی مسئله روایت داریم یا نه حتما اخباری ها رو ببینید کتابشون وسالشی است، کتابشون وافیه. کتابشون هدایقه. اینا رو ببینید. اگر اونام دیدید پیدا نکردن به احتمال زیاد هر هرچند اول با این کامپیوتر اینا باز روایاتی هست که از دست اخباری ها هم در رفته. چیر؟ نه روایات دیدید روایت داریم. حالا شما ممکن موجود محکد موجود این صحیح نیست. یا هست اون دوگه آخشتسانی میگه اصلا نداریم. شما اول ببین روایت داریم بعد بلاسی کن حال ضعیف است یا ضعیف نیست اون یه بحث دیگه ولی اصلا روایت رو خودشو رو پیدا بکن بعد خب اینم از این بریم مستحب بعدی وا وذ الیداینه قائما علی فخزئه به هزار رکبه وقتی ایستادید موقع نماز دستارو کجا بذاریم ببینید دقیقت نظر اسلام این دین آسمانیه دیگه دین آخر و زمانه. این باید یه جوری احکام بکنی که تا آخر قیامت این شما رو تغذیه کنه موقع ایستادن دستارو رو کجا بذاریم و بزن حالا این اسلامی که میگه موقع سجده کجا رو نگاه کن نوچه دماغت رو نگاه کنی مستحب موقع تشهد دامن رو نگاه کن موقع ایستادن دستات رو رانها بذار اینو میگه در مورد حکومت بعد از امام زمان که خیلی بیشتر از دوره حضور بود دوره حضور احمد دیویست سال بود دیگه از سال ده اجری تا سال دویستو و شست اجری دیویست سال امام داریم اینو برنامه داریم این باید امام حاكم بشه ولی از سال 260 هجری تا فعلا 1400 نزدیک 1200 سال ما غیبت داشتیم حکومت بر جامعه اسلامی رو اون اون برنامه رو هر جو هر چی زودتر چیزو هرچی رزی تر بود هر چی مساوات هرچی هر چی تنتر دوید اون هر زورش بیشتر هرکی جنگل بود هر کی بود اینه یعنی انصافا برای دوران غیبت حاکمیت بر جامعه اسلامی رو خدا نظری نداره میشه اینو گفت نه این دلیل اهل اینا میگه این یه دلیل اهل مولا درس هم نمیده. دلیل اصلی ما بر ولایت فقیه هم همینه نه اون معقوله عمر بن حنظله و نه اون روایت مؤید مطلب هست خیلی از جهات این مطلب ولی اصل دلیل ما عقلیه چیزی که ولایت فقیه رو قبول نداره این در استدلال عقلیش اشکال داره رو حتما داشته باشید. بله. صورا چیزی که ولایت فدرا رو قبول داره، با این استدلال عقلی دیگه این استدلال عقلی مولا دراش نمیده، نمیشون ردش کرد. انا همین بود دیگه. شما بگید که یعنی از اینجا دارم میگم. میگم شما نوع این چه این که مردومک چشمتون به کدوم طرف باشه موقع سجده. نو که بینی تو نگاه کن یا اینکه مردمم میدونن دیگه دست روی میدی کدوم پات اول بذار اینا اینا مهمه اما جامعه اسلامی که همه شما رو شامل میشه حاکمش چی باشه اون نه اون هر چون خیلی حرف سباچیه اونان که ولایت فقیه رو قبول ندارن خیلی حرف سباچی میزنان لذا حق خیلی دلیل محجمیه بر ولایت فقیه امام هم همین رو آورده امام تو واسه ولایت فقیه گفته دلیل من برای غلط فقهی دلیل عقلی روایت معیده حالا این زبده اومده روایتو ضعف سندی رو استدلال کرده گفته به فرض ضعیفه من چه نوشتم بنده خدا این داره به عقل استدلال میکنه روایت غنیمانی زنم میگم که شما با یه روایت مثلا یه دونه اون سندش راویش سقتون باشه کلن دوران چند هزار ساله غیبت رو میدید دست فقیه اون سرعتو نباشه کلن از فرین میگیرید چه کاریه با اینا نمیشه این بچه بازی نیست که اینا رو بدید دست بزرگترا بذارید اونا تصمیم میگن شما همین اصالت و طهارت اینا رو درستش کنید مشکل نداره شما فقهات تو بگو اما بحث حکومت اینا این یه عقل سالم تری میخواد بده اونا که عقلشون سالمه چیزی مثل امام خمینی اومد اینو هم ارائهش کرد تئوریش رو هم این آدم عجیبی بود آخه بعضی وقتا تئوریش رو ارائه میکنن مثلا یه 400-500 سالی میگذره از اون تئوری یه نفر پیدا میشه عملیش هم سعی میکنه اجراک امام هم تهوریش رو اجراک کرد ارایه کرد هم عملیش رو پیاده کرد گفتیم تحوید باید گفت بکنم اگه ارزه دارید همین رو میگرد ارزه ندارید که با <تصال> <تصال> چی دیگه نعمت خود رو از رستو خواهد. خیلی خوب چی فهم رداشم پس باشتنی یه باید دیگه میم این مض و وضع اول حالا این احکام لیز رو اینجوری داشته باشید وضع اول یادتونه قائما الا فخذیه دستاتونو در هنگام ایستاده بودن بر روی ران‌ها بذارید الا فخذیه به حزای بتهه. خب کجا سمت راست و چپ یا جلو میگه در مواظات زانوها پس کدوم میشه پهلوها میشه یا جلو میشه جلو میشه دیگه من دیدم بعضیا خیلی مقاید. خیلی بعضیا نمازه خوبی میکنن. آدم نگاه میکنه لذت میبره استحباباش رو اون نحوه استادن نشستن اینا رو رعایت میکنن کلماتش رو خوب میگن دستاتون رو قشن جلوی, زانو جلوی رانها در موازات زانوها میتارید مضمون مطل اصابه انگوشتار رو جمع میکنید آبا من دیگه یه لسل تو این بحثا انگوشتار رو ببندیم یا باز کنیم یه بحثی توش پیش میاد آه اصلا انگشت 60 هم چسبیده باشه یا اون جدا چون ما داشتیم که تو بزیش اون 4 تا به هم بچسبه ولی ابهامان باز باشه حالا اینجا چی میگه که مزموم مثل عسابه و من هل ابهامو یعنی انگشت 60 هاتون هم مزمومه باشه به هم چسبیده باشه قشنگ حالا خودم اینجا بگه خودم از موقع نماز دستا یه جلوی ران‌ها انگوشتش هست هم چسبیده به بقیه انگوشت ها و را چه ان الان عینه موقع رکوب دستگاه رو کجا بذاریم روی دو چشم هاتون. تو فارسی ما عینه میگیم کاسه میگیم کاسه زانوها رو دو کاسه زانو میذارید الاسا به اوول ابهام و مبسوطتون یعنی در حالی که انگوشت ها و ابهام چیه بازه دیگه اینجا موقع رکو موقع انگوشت ها رو بسته نباشه مزموم نباشه باز باشه هنها جمع یعنی همش تأکیدون لبست الابحامه و لعصابه یعنی اینجا حتما همه انگوشت ها باز باشه جمعه تأکیده تحکید برای باز بودن همه انگشتا میدونید دیگه جمعه از الفاظ تحکید لفظی یا معنوی؟ لفظی یا معنوی؟ مگه لفظ نیست؟ ده. پس میشه تحکید لفظی یا معنوی؟ میشه آه. معنوی تحکید من... لفزی این بود که خود لفزو تکره پس اینجا گول نخورید این بستوان نکنید نیست معنوی خب تحکید معنوی بود و سماییتون این اسب توجه داشته باش. اسبع معص سراعی است اساببه که جمعه مفردش اسبع میشه این معنس سرمای است ظال چه به ما یا عاک بهی جمع معن است. میدید اسب مفرد اعاببه معص خودش. جمعش صبه شد حالا. تأکید چی رو آورد؟ تأکید چیزی رو آورد که جمع م存س رو باش ترکید میکنن جمعه. جمعه یعنی جمع جمعه رو نگفتیم ببین میگه جمع ای رو آورد که باش چی رو ترکید میکنن جمعه رو آورد که باش چی رو ترکید میکنن با جمع جمع مونس رو ترکید میکنن اسابه مگه جمع مونس ای آره چون اسپل مفردش مونس دیگه پس برای این اعصابه یه چیزی رو آورد رو آورد که باهاش مؤنث رو تاکید می‌کنن این عبارته احتمال میدم خوب متوجه نشیده. توضیح دادم دقت کنید دیگه به بخاطر اینکه این مؤنث سماعی است اکدا این اعصابه را با آن چیزی که ما این آن چیزی که مساقش جمعه با اون جمعه آورد تاکیدش کرد که تاکید می‌کنن به وسیله این جمعه جمع مؤنث را مثلا زاربات رایتو زارباته جمع جمع برای جمع مؤنثه خب میگن اینجا میذارن جمع مؤنثه دیگه و ذکر الابهامه لدفع الابهامه ابهام رو ذکر کرد تا ابهام رو برطرف کنه این یه نکته بلاغی داره نمیدونم یادتون هست نه ابهام رو ذکر کرد انگشت ابهام رو ذکر کرد تا ابهامی که در اینجا ممکنه براتون پیش بیاد رو برطرف بکنه چرا چون ممکن بود شما بگید که آقا این ابهام رو من چ... این انگشت ابهام رو چیکار کنم بالاخره چون این حکمش با بقیه انگشتا خیلی وقت‌ها فرق می‌کنه بچسبونم یا باز کنم چیکار کنم میگینه ابهام برطرف شد دیگه همه‌شو باز کن ابهام رو هم باز کن و هوا تخصیصون بعد از تعمیم تخصیص بعد از یعنی این همه شما بچه‌ها همه شما بچه ها و آقای هادی جوان همتون طلبای خوبی هستید. خب هادی جوانم تو شما بود دیگه. چون هادی جوان ی جهت گفتم که برگش خوشقختانین برگه بود. آره. همتون طلبه خوبی هستید، هادی جوانم هم همتون. خب هادی جوان بود دیگه، اینا شما بود دیگه. اینو میگن تخصیص بعد از تعمیم. یعنی همه رو گفتیم این هم هست توش ولی اون یه نفر رو دوباره ما خاصتا ذکر کردیم پس میشه تخصیص بعد از تعمیم حالا جام میگه انگشتا باز باشه ابحام هم باز باشه ها این ها بود که آه. علتش اینه چون این نمیگفت ممکن بود برای شما یه ابحامی پیش بیاد لنه ها اهدل اصابه چون ابحام یکی از انگوشتاست دیگه داخل اونها بود و ساجدن دستها رو کجا بذاریم مورس سجده دستارو کجا بذاریم خب دستو که رو زمین قرار میگیره ولی کجای زمین باشه نسبت به بدنمون کجا باشه و ساجدن به هزای اوزانه‌ایه در موازات گوش ها بذارید جلوتر یا عقبتر نذارید مستحب دیگه بعضی وقت آدم اینقدر عقبتر میذاره سجده یه دفعه شیزه میره رو مر ولی مثلا جلوتر میذاره انگار مثلا داری یه حرکت ژیمناستیک و حرکت چششی انجام میده نه واشن مواظت گوش‌ها در هنگام تشهد دستا رو کجا بذاریم؟ و متشهدن و جالسن لغیرهی، جالسن لغیرهی یعنی وقتی نشسته برای غیر تشهد. در هنگام تشهد که نشسته، در هنگام جالسن لغیرهی یعنی به غیر تشهد نشسته، مثلا موقع سلام یا بین دو سجده، جلسه استراحت یا اینکه اصلا نمازش نشسته است، نشسته، در اونجا رو کجا بذاره؟ نوع نشستن رو قبلا گفتیم نگاهش هم گفتیم حالا دستش رو کجا بذاره؟ علا فخذیه رو رونها بذار چه حیعت القیام روی رانها همین در موازات زانوها مثل حیعت قیام چه جوری باشه؟ فکره اونها و تل اصابعه به هزار رجبت اینه دو تا نوشت داشت اولا انگشت ها بسته باشه مضمومت تل اصابعه موقع تشهاد به هزای روش هم یعنی در مقابل زانوها و یاست یا ها بالکونت فج بکنم دیگه وقت تمام شد سلامت فرست انشالله مساله انشالله